چی کار داری؟ چرا منو تعقیب می‌کنی؟ تو هنوز از آرش دست نکشی. این باطل برات مهم نیست؟ به شما ربطی نداره. رونا، آرش آدم کشته. حکمش اعدامه. بی خود الافهش نکن به درد تو نمیخوره. بی خودم دنبال وکیلو کمک کردم بهش نبود. من خودم می‌دونم برم چیکار میکنم هم زندگیش نابود شده. فراموشش من آرش رو ول نمی‌کنم. از ماشین من بریم. از ماشین من بریم بیرون. نکنه می‌خوایمش فرار کنم؟ بایله خوب مراکو. اگه با من روزی نکنی این کیف و ها بوله جوره؟ موزید. از کم کم آماده شکی بریم کارخونه موبل نظریز رو معامله کنیم آره، باشه در تماسیم قربونهت خدافز بسم الله زحمان زحیم، من از از بیننده و روز السلام عزمت منم. ما تفليت میگم به شهادت مولا عمیرالمومنین علی علی الصلاة و السلام دو. داشت شما گذاشتیم بسیار عزیزمان دیروزن دیدیم. داد تبر با مکان مولا چیکار کنیم؟ آقای خود. به نزدیک وشی شروع کنی یه. مسلما. سگید صلی. هزار جزیی مولا برای ما در آن زمان. امشت من ازدواجی بودیم. امشت من مثلا. دیگه جهرات ندارم برم خونه چرا؟ گفتم که بهت یارو مرتزاد دوباره سرکلش پیدا شده رفته سراغ شادی فهمیده ما با یه نسبتی داری اون که دیگه کیف دستش نیست باشه به نظرم هر کاری ازش بر میاد حدرس رو بلده یه بار قاسمه آورده رسونده اونجا قاسمه فکرانم تا حالا فهمیده آدرس آده که بشتادم قراش با این کارات دوری پیره مرده دقمه هرگش میکنی الان خودش هزار تا فکر میکنه خب چی کار باید بکنم ساله خب چی کار باید بکنم تو نمیدونم چی کار باید بکنم ولی این کاری دستان درست نیست دبه اون همه کمک کردنه دبه این همه آزار دادنه خدا رو خوش نمیادارش روزت رو با کنم رو از رو در داریم داشتن بسم الله چرا اسم و فامی رو به من دروغ گفتی؟ من خیلی وقته میخواستم بهتون بگم که ولی نتونستم ترسیدم خب حالا بگو گوش میکنم بگوش چجوری بگم؟ من از تا نیت اومدم سمت شما اون روز اولی که دیدم اتون تو بیمارستان فهمیدم که آدم تنهایی هستین کسیو رو نداری من اون کسی نیستم که شما فکر میکنی من سابقه دارم برا همین آدرس خونه علکی دادم. نمیخواستم که شما صابقهام بفهمید. چه کار کنی میخواستی خونم رو خالی کنی و چرا نکردی توی این مدت کل وقت داشتی برای این کار من میخواستم این کار بکنم ولی ولی چی ولی هرچی بیشتر با اتون آشنا شده بیشتر از نیت خودم شرمنده شده یعنی اون حرفا که من جای پدرت هستم و پدرت کشته شد و من میتونم جاشو اینو همه دروغ بود؟ دروغ نبود نه یعنی تو تمام این مدت من به یه آدم سابقه دار و خطرناک اعتماد کرده تو خونم راش دادم و نشوندهش سر سفره باورم نمیشه باور کنین یا نکنین حسوست همینه به تو نمیاد اصلا باورم نمیشه یه بقتای یه اتفاقای دو زندگی میافته که آدم تبدیل میشه به کسی که حتی فکرشم نمی کرد به من خیلی لطف داشتید نه شهرمنده امیدوارم که زودتر دخترتون برگردن و دیگه تنها نباشید من باید برم این چیه؟ برای شماست گرفتم که لباسی سیاهتونو در شب کارم طول میکشم آن نمیاد نه شام خوردم ممنونم آنچه آلو تو انچه کار می‌کنی؟ مگه نگفتم تا وقت دادگاه نه می‌خوام ببینمت. رو گذاشتم واسه فروش. آرا کی میگی؟ به جان خودت که خیلی برام عزیزی. چی شد؟ از بازی و دادگاه ترسیدی ها؟ از دادگاه که خوشم نمیاد. به خصوص وقتی شاکیش مادرم باشه. ببخشیدا. اونقدر نمک نیستم بخوام با شما وارد دعوا بشم که. فعلا که شدی. خب خودتون صبر و تحمل من از اولش هم گفتم کارم رو باخته سم بچه‌رو می‌دادم. چی؟ حالا کارت رو افتاده؟ آره. فقط شما باید یه تماس با پدر مادر رونا بگیری، یه قرار بذاری بریم خونه‌ش. اصلا حرفشو نزن، من این کارو نمی‌کنم. بله رو ازش گرفتم مامان. از رونا؟ آره. مطبعه نی؟ نرم دوباره اونجا سنگ روی بخشم مطمئنم که خونه رو گذاشتم واسه فروش شما فقط این کاری که میگم رو انجام بدید بس حالا فکرام بکنم فکر کردن نداره همین الان من شماره‌شو میگرم شما باشون صحبت کنید دیگه مگه نمیخواید زودتر سم ها رو بدم ببینن که قبول نکردن تو در هر حال بعد خونه رو بفروشی قول میدم آفا بله ال سلام فردا خانم سلام هم خانم حالتون خوبه ممنون من شرمندم دوباره مزاح میشم ببخشید میخواستم باز در مورد کام بیا رو رانا باتون صحبت کنم ما که همه حرفا رو زدیم دیگه حرفی نمونده ببینیم هم خانم من که بهتون گفتم دخترم یکی دیگر رو دوست داره اشتباه به عرضتون رسوندم رونا اگه نظریش رو اولین کسی که خبردار میشه منم نمیدونم ولاد. بعد با خودش حرف بزنم گرچه که شرط اول نظر پدرش باش تو با نظریم صحبت کنید خیلی محبت میکنید من بازم اوزه امتون میشم زنده باشید خدا نگه خدا خود حافظ خونر باید بفرشی آن قول دادم دیگه خاله تو خوب راه نظری؟ خوبم ممنونم بهتر نبوده کم بیشتر استراحت می‌کردین آقا رامانم خیلی نگرانتون بودن نه دیگه خسته شدم تو خونه حالم خوبم چه خبر روز خوبه, خوبه. چند تا سفارش جدیدم گرفتیم خوب خوب باشه بابا شما می‌خواستیم بیا میگفتیم واقعاً نیومدین یه ترس میگرفتم میدونی پوسیدم تو خونه خبرای خوب شنیدم آره خدا شد؟ بدک نیست هنوز رکوده ولی خب بهتر شده خوب حالا که انچین روبراشد تو دیگه نمیخواد بیا اینجا برو به شرکت خودت برس خب اون که اصلا رو قلتکه ندام خوشش اومده میاد سر کار خوب همشی یعنی انقدر وارد شده که از پس کارا بر میاد حالا کارایی که بهش سپردیم و درست انجام میده مهم اینه که دارو به من اعتماد میکنه. این مطلک بود مطلکی چی؟ نه. برای اینکه همیشه تو از من شاکی بودی که باید اعتماد نداشتم حالا <تصفيق> خب ما یه بار زمین خوردیم شما بابای ما بودی حق داشت. نمیدونم ولی من این کار رو حتما باید میکردم من به پدری که فقط یه پسر داره بابا سالها زحمت کشیده تا کارگاه و فروشگاهش رو به اینجا برسونه سخت دستان ها بمونیم من دلم میخواست بعد از من تو اینجا رو بگردونی ولی خوب تو هم باید بری دنبال کاری که به شلاقه داری اینشالله سایتون بولو سر ما باشه اینشالله خیلتون راحت سلام اینجا تناتون نمیزن زنده باشی اینشه ای ماما هلو سلام فریده نه فروشگاه. آره رامینم اینجوری خانم کریمی با آره حالا که اومده من ای دو ساعت میرم بیرون یه چیزی اگه برگشتم که چه چیزی برگشتم یه آقای میاد به نام محمدی تای‌کننده تلویزیونه میخواد واسه برنامهش از ما موب بردارت از اون کارجایی که بهش نشون بده باش. همین همی کار هم کار که چند هفته پیش فروختیم خب هم رنگ‌بندیش خوبه هم جدید و ایناست بین مدلایی که انتخاب کردن رنگای پارچه‌رم بهش نشون بده حتما من خیلیم راحت بشم حتماً پیار راستشونو درک کنم باشه باشه نه نگه رو چی خودو چیشو مادر کامیار سعی زده به مادرت میخوان بیان برای رونا صحبت کنم این پیسر چقدر پرروه چرا ولکنو مجره نیست کامیار که گفته با رونا صحبت کرده رونا مخالفتی نکرده اصلا غیر ممکنه امکان نداره که نظر رونا عوض شده باشه اصلا رونا نمیذاره ما در مورد کامیار حرف بزنیم که سردر حالا واقعا نیچنه با وسطیقه بیاد بیرون؟ اتحامش ثابت نشده سند و مدرک کافی هم که ندارن نمیتونن یه نفر را همینجوری بی دلیل نگه دارن اونسو خب وقتی دلیل ندارن برای چه سند میخوان تا آزادش کنن؟ خب برای اینکه نمیتونن ریس کنن ممکنه بعدا یه مدرکی پیدا کنن و دوباره بخوان دستگیرش کنن پس سند خونه کجا بی باید جور کنی خانم وگرنه اون تو میمونه با من کاری نداریم؟ من نمیم باید سلام سلام هل شما شما از سامان خبر داری؟ نه بالله رفتم زندان یه بار ملاقاتش کنم اجازه ندادم من هم رفتم ملاقات نزاشتم بودم فکر فامیل درجه یک من خود فامیل درجه یکش کجا من مرش وکیل گرفتم با وکیلش صحبت کردم میگه که با توجه پروندهش اگه قاضی پرونده اجازه بده با وسیله میشه آوردش بیرون راسته درست همین اومدم پیش شما چون خونه که خودش داره ارزشی نداره قاضی قبول نمیکنه. حالا الله شبیه من که خودم اصلا مستجرم از خودم خونه ندارم فقط این مغازه است که این هم سدونگ سدونگ داداشم شریک خب میشه با بردرتون صحبت کنی راضی شه باشه یه زنگ بهش می‌زنم علس حلا چطوری دادش؟ کوبی هسته نباشی چه یه افتی از رفقای من الان افتاده زندان بعد قاضی پروندش گفته که اگر بسیر رو بزارن میتونه آزاد شه. بعد گفتم بابت رو سنده مغازه اگر تو راضی هستی چون بد رزه داشته باشی که امضا کنی سدنگ سدنگی ببریم اونجا بذاریم خب من میشنسمش اشاره خیلی باشه اگر نقبول نداری که هیچ. نمیخوام تو رو در با سیوزان. دوستمی گی نمیشناست. چه سلام برس خداحافظ. چی شو؟ زایر نمیده. میگه تو آمی رو میشناستی من که نمیشناستیش. چی کار کنی؟ الان تو اومدی من بد باشم نه بشین جا خوبه اگم ندا این معموره که میان داری تو قیف انبال بیمزه اگه تو چاره دیگه گذاشته بودی برای من راست میگی حالا که فکر میکنم اینم حق داشت منم اگه جای تو بودم میترسیدم خدا مطمئن نمیدارم چی میشه ولی خدا رو خوب پیش رفت خدا شکر. را رو شکر راستی رامین نه شکایت پس گرفتن امروز رو اول وقت رفتم پسش گرفت. پس اون ساعتوان بذاریم تو کار دیگه بول لازمه دوست نکن خودی تو ولی از شخی گذشته رامین بیا کم کم فکر خونه باشیم تو همین پول کمی که ما داریم من میتونیم یه جای کوچکو بگیریم مستقل شیم از این وضعیت در بیان. من واقعا دوست دارم بریم سر خونه زندگی خودمون ما دیگه کم کم باید فکر بچه باشیم به امید خدا سلام سلام حالا خوب میش میرم خونه اونو چی برای داری سر خودت می؟ آخه ببینید چه روزی افته بی میخوای چند وقت نمی دفتر اینجا بیشتر اونم میریزی من هم چی من با طرف زده جریان چیه؟ موان کامیار زنگ زده میخوام یاد صحبت کنم چه بروی دارن اینا رونا بایس اونان خودم بیرس اون خودم میرم. نه میره کار دارم رونا نمیرم آقا تو با این حالت کجا میخوای بری؟ رونا رونا بایس اونان میدار دیگه میخوام تنها ها باشن چی رفتی براج کدوم باجگیری گیری؟ که به اون رو؟ ما اصلا سراغ آرش نرفتن اگه منظورتونه خود آرش میگه رفتی سراغش ما رفتم سراغ کسی که فکرم پرم آرش رو میشنسه کی؟ همین دختری که تو مایی سره کار میکنه از کجا میدینی هم دیگر رو میشنسن؟ حد سیزمان ببین چه بهش نسه چه نشنسه به تو هیچ ربطی نداره ترونده ای این موضوع برای من و تو بسته شده من به چیزی که میخواستم دارم میرسم تو هم به خونت رسید درسته؟ چه مرگته دیگه تمام شما صاحب اون عکسی که تو کیفودو این اشناختی که از گرفتیش اون قدران برات مهم بود که خونه منو برگرد من میخوام بدون اون که پیجوان کشتی کیه هم. به تو هیچ ربطی نداره چوچه من نگاه کن ما به این موضوع با هم دیگه هیچ کاری دیگه نداری خطواجه شدی؟ هم خوام بزنه اون دوتا چرابطه ای با هم دارن. همین شما فقط سرت به کار خود از باشه خوش اومدی راستی شریدم خونتو میخوایی بفروشی واقعا خیلی بفروشیش شما مشتری نه بابا ولیگه با. مشتری خوب پیدا کنم پورسانتش رو میگرم حیفه اون خونه مون بفروشی خوش اومدی به زحمت افتاده چی میگی تو بعد هر چیز رو تر بیارم به بیرون اونجا نیست فیلن که هست شما کجور مخوید سنجور کنید رفتم سراغ مجیزه ببینم میتونه کمک کنه. اومدم اون بند خدا مستجره محوظرم شریک با که. آره بریم گفت حالا حالتو نوامید نشو من دنبالشن از کجا اصلا کی میاد اعتماد کنه برای متهمار از زند بزاره منخل خدا بزرگه من سعی میکنم خانه رو راضی کنم خود تو درد سر میدازی چهره دیگه ای داری تو از خودت بگو چیکار میکنی درست شماری تو زنگان کرد آره یه جوری خودتو سرگرم کن کتاب بخون ورزش کن نمیتونم نمیتونم میخوام خلاص شم از این که توش گرفته شدم میشه مطمئن باش شادی درم باید خیلی تنگ شده نه من میتونم کاشتی هیچ کلومه این اتفاقو نیفتاده بود الو شل سفارش های آقای فاضلی اومده است خب به وقت تعویض دردم چیزی خواهر محبت شما من نظرم بارش ها؟ بله پایینه بفهمیم بایش جای دیگه ای ندارم برم مجبورم همینجا تو چپ خونه بمونم به خاطر همین نگرانی ها نمیخواستم بفهمی دیگه فیلم بهت زنگ میزن آخه شو بهش فکر میکنم خلافظ آخه برای چی بودم شدیم اینجا شادی اگه این ملتی که مرتزا کرده باشه چی اصلا شرکت نرفتم این رویز از تو دنبال کار سامانم حال مامان چطوره خوبه تو تا که اینجا بمونی؟ نه سامان کارش به کجا کشیده نکیلی که برایش گرفتیم درخواست آزادی موقت داده قاضی هم قبول کرده خب این خیلی خوبه خدا رو شکر بس چرا تو خوشحاد نیستی؟ سند خونه سامان قبول نمیکنه. سراغ دوستش هم رفتم ولی اونم کاریت دستش بر نمیان خب سند خونه خودمون که هست که اصلا گره بانکه بعدشم مثلا باید میدونم با مامان قبول کنه تو کارت هم همین زکم پود هست برونا هم صحبت میکنم کمکت کن سند خونه رو از گره بانک درگیر با مامانم هم حرف مزرم می رازش میکنم پیالت را هردش پس می خونه؟ نه بشته دفنیزم ماما خسید دلتنگتو آرش نه من می توان سلام آقاسم مرتضى براتون آش آورده یه بالا اللهم يا قبول باشه و جای آقا پجمان خدا بیراموز خیلی خالیه روزی نیست که پام بذارم اونجا و یادش نیفتم نم قسمت شاخشم شاد ما بود که بره و ما رو تنها بذارم خیلی حیب شد اونجا هم که الان هرکی هرکیه چرا؟ من که کارای ماه سرار رو سپردم به خانم جوان مردی اونم کار خودش رو خوب بدده حالا امروز که نیومده بودم یک دوتو مشتری هم داشتیم که رفتم برای چی رفتم؟ نمیدونم با کی طرف هم حق هم دارن کار که ساز خودشون رو میزنن این روز کاری براش پیش اومده که نتونستی بیاد محیسه را اش تلفون بیزنم بگم منظم باشه این ارو پسره که کاراتونو میکرد کجاست چطور نگه آشناس یعنی از اقوامو دوستانه نه چقدر بشه اعتماد من به شک دارم چرا؟ فکر میکنم که ارتباطی بین اونو خانم جبا مردی هست چه ارتباطی؟ نمیدونم ولی فکر میکنم هم دیگر میشنسن از کجا فهمیدی؟ من دو سباری که با شما ما این سرا زفتار کاری داری نه آقا خب منو برسونی جایی جشمت من اصلا خلف بشم نزد مامان یه لحظه گوش کاشم گوش نمی تو به اندازه کافی برای سامان وقت و انرژی گذاشتی دیگه. آخه یادم کیه توه؟ سامان بیگناه من مطمئنم چشوری شوی دلتون میدیادم بیگناه شو زندان باشه من سند خونه رو نمیدم که براش ببری از این به بعدم اجازه نمیدم هیچ کاری براش بکن بله من قاسم شریفی هم بله بفرمید آقا قاسم بود من نمیدم این موقع شب برای چی اومده این وقت شب مزاحمتون بشه یه ناچار شدم خیر انشالله خدای نکرده اتفاقی افتاده دخترتون باید بگه نمیخوای حرف بزنی؟ در مورد چی؟ جریان چیه؟ آدرسی که این پسرک داده بود علکی بود کدوم بسر؟ تو میدونه راجع به کیفت میزنم. زور نیست؟ چرا سرکی شدی؟ چی میگن آقای شریفی؟ بعد از مرگ پژمان پسکی به کمک من اومد. های دستم شد. کارام انجام میداد و حسابی به دادم رسید. ولی هیچ فهمیدم که یه چیزی رو از من پنهان میکنه. الان چی شده چرا اومدین سراغ شادی چند روز پیش که اومدم خونه شما تو حیات یه موتور دیدم که شبیه موتور آرش بود آرش من اسم پسریه که را جوشترم براتون حرف میزنم نشنسینش ولو من یه پسر دارم که اسمش آرشه بلی فکر نکنم اون کسی باشه که شما راجع بهش حرف میزنین ا... یعنی غیر ممکنه خب اگه یه عکس از پسرتون به من نشون بدید معلوم میشه شاید من اشتباه میکنم شدی اطلاعی چی هستی؟ پش برو یکی از اکسای حراش رو بیار پش دیگه مادر برو یکی از اکسای آرشو بیار چرا نگفت که برادر توه طرف نزدی. شما دوتا چیو میخواستید از من پنهان کنید هیچی تو روک میگی سودی مونجدیان چیه آره شید وقتی فهمید که آقا پژمان درگیر شده افتاده تو بیمارستان خیلی ناراحت شد بعدش با من گفتش که اگه تو رقعی مزای در رو نمی گفتی این صفاقه نمی افتاد به که فهمید آقا پجمان رفته تو کماه و شما دستنهایی خواست بهتون کمک کنه خب چرا خودشو معرفی نکرد ترسید شما بفهمین آشناست رو قبول نکنین گفت بکنین غریب است بهتره مش خودش فرصت مناسب من خودم بهش میگم بس. گوش دادم Hadi بابا بیا میخوام بابا تعرف بزنم میدونم چه میخوام بگی زن بزنیم بیش بگی زنگ بزنیم مادر مادر کامیار بگیم بیا گوامان، هنوز هم نمیخواید با حرف بزنی. خب من که همه چی رو بهتون گفتم خب آرش به گفته بود به شما چیزی نگیم که شما استرس اذیتتون نکنن من یک کلمه از حرفاتو باور نکردم بس کنین این دروغ و گفتن رو فکر نکنم قاسمم باور کرده باشه شما فکر کردیم با کی طرفین که به شما گفتم میخواسته که ازش مراقبت کنه اون روز یادته تو آشپزخانه نشسته بودی گریه میکردی آرش رسید كبودی پای چشمتو دید دفعه به هم بیخت گفت میرم دفتر ولی دروغ گفت از اون روز به هم ریخته و عصبی غذا نمیخوره شبا دیر میاد خونه دفتر نمیره علکی گفت منفشه دست روی کارم منم پول دارم بهش الانم علکی میگه من رونا رو نمیخوام دو شب خونه نه رفته به پیرمرد کمک کنه امخ اینجوری همه چیزو رو پنفو کنه حتی نگه که کیه برای چی پنهان کاری کنه آرش میت گفت بزار سامان دربیار در برای که آرش میدونه که سامان بجوانه نکشته وای خدایان آن چه خاکی به سرم زیاده خدا ای خدا, ای خدا. من شدم شادی من باورده بکنم چطوری آراشین کارو کرد جون امدی که نبوده دابا شده حالش شده فکر نمی اینجوری بشه. وای او شادی من بخشدم او خود یک کمکم کن همه من حس خوبی نسبت به این ماجرا ندارم همین که دیگه به آرش فکر نمی‌کنه من خیلی خوشحالم چرا با آرش به حمزه چی شد که یهو نظرت عوضه با آرش شدی چون این قاتل برادر منو خیلی راحت آزاد کنی تو دیگه نباید بمونی اینجا باید برو برم دیگه رو یه چیزی هست که میخواهر برادر از من پنان دروغ و دقال بس خستم کرد تو چی کار کردی آره؟ توی تاریکی شب آه در جریان بود زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یه بارون وارد. دستای تا خون پر از گل داوودی شد ماه از راه رسید روی را پل نشست دکمه های غل من دودون شبال شدن گفتم این یه ماجز است شد به آسمون همه ی ستاره ها دونه دونه گل شدن مرا بونی ایش نزنی ایش آخریم دیگه ایم جورچینی ایش مرا بونی ایش نازنینی ایش آخریم تکیه این جورچینی ایش نخ باد بادکم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 مهربونی ایش یش نازنینی ای یش آخرین تیکه این جور